بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم الدرس الرابع عشر اخلاق الدين خدا جعل رسول الله صلی الله علیه و الهدف من بعثته المبارکه تعمیم مکارم الاخلاق و تعمیم ها ما داشتیم علوم دینی یا معرف دینی رو خوانده بودیم چند دسته شده بود معارف دینی معرف الهی صداس <تص> <Liverpool> um <schöne> oh. دو دستمون دو من شد دین دین چند معروفش معروفش غیر معروفش. سعیشو. احكام معاملات فرویدینه یا نیست؟ اما قسمت سوم از معارف اسلامی هم اخلاق دین هست. بررسی. حالا این بیش نمی‌کند. جعل رسول الله صلی الله علیه و قطعاً رسول اکرم صلوات الله علیه و آله جعله یعنی قرار داد قرار داد چی قرار داد؟ الهدف من بعثته المبارکه هدف از بعثت مبارک خودش رو. هدف از بعثت پربرکت خودش رو؟ تتمیم چی قرار داده؟ تتمیم و مکارم الاخلاق تمام کردن زیبایی‌های اخلاق تطمیم تمام تمام کردن زیبایی‌های اخلاق و تعمیم ها مکارم زیبا و تعمیم ها و گستراندن اخلاق را در اجتماع گستراندن اخلاق را در اجتماع و بین مردم اخلاق در بین اجتماع و مردم گستراندن گستراندن اخلاق در بین اجتماع و مردم جامعه هم میتونین بینیسین فرق نمیتونین در جامعه و در جامعه و بین مردم آره مردم. تمام شد تا اینجا؟ تمام شد یک کسی برای ما توضیح ده که به چیز هدف چیز اخلاق چیز چند نفر توضیح می دن که به و اخلاق و بقیه چی هست غیر از دو نفر سه نفر چار نفر،, نفر پن نفر شش نمیده دیگر کسی توضیح نمیده؟ خب خب شما همزا آخری بگید چون آخری بگید خدا رحمان رحیم به سر سر برداشت نمیم باشد که پیامبر خدا به پیامبری مقوض شد و هدف شما می بود که اخلاف اسلام میده به تمامی مسلمین جهان یاد بوده و به ما اقومت اوهر به اوهر شد و از امو خیرانی کنه حالا شما تاوجه میده تاوجه بدهید به ازسر پیغام من باید؟ خیلی عالی دیگه که شما شما بودین شما شما امروز انجام دادی شما این پرسی بده نگه گفتین آره بسم هدف از به خود به حساب به به از شده شده خدا خداونج و رحبه اکرام را به ما و پیامبری معبوز کرد که هدف از به اصلاح که دین اسلام را گسترش و تمام بکند به آخرین پیانبر ما کرد محمد صلی اللہ علیه و سلام علیه و آلیهی و سلی اللہ و آلیهی و و در تمام جهان و دین اسلام مکمل شد حضرت و همچنان در هدف از بحساد پیامبر که بود یعنی ای بود که اخلاق اسلامی در تمام جهان گسترش بده و امت اسلام زیاد چمار در یک آیت از قرآن شریف بسم الله الرحمن الرحیم و ما از که الا رحمتون للعالمین. آلمین ښه ب با ما تو تورا نفرستادیم رحمت برای آدمیان باشی یعنی پیغمبر هدف فرستادن پیغمبر چه است پیش از ی ان پیغمبرای مثلا یکب بستو چار هزار پیغمبر یا بیشتر از او فرستاده شده که حتی بستو از و پیغمبرا هس مجا قرآنشریف عامله هما که بهترین پیغمبر ما است یا ما حمت رز استیم به ای دلیل است که ایشان پیغمبر اخرالزمان می باشد آخر زمان است که تمام جهان روب با می رو به خرابی و به فساد میل و تونسدی پیغمبر وقت ناظر شدن از پیغمبر تمام جهان پر از عدا داد کردن در روزمان زمان و ها یا رو بعضی از اسم های دیگه ای که مردم انجام میدادن تمامش از بین بردن و جهان پر از نور رحمت کردن برخلاف دیگه پیغمبرایی که کاروار خودو تا بعضی میکه عذاب میکردن و تنها عذاب میخواستن اما پیغمبر خدا هر بار که امت خود خطایی می‌دونرا بخشید و از خدا باشن مغفرت خواست پس به یه دلیل ما بهترین امت پیغمبر رو بهترین پیغمبر رو حدرت شما بلیه خود است که خایه ها اسلامی رو دردهیم سعی کنیم وقت نام پیغمبر رو بردیم این طوری بکنیم خب صلی اللہ علیه و سلم نه و آلهی و آلهی رو من ذکر کنیم آره شو؟ آره پیشتر ما و شما خواندیم ابتر معنیشی چی بود؟ نوریده در راجع به صلوات هم همینطوره میگه صلوات ابتری نفرستی. صلوات ابتری چی طوریست؟ صلوات ابتری علیه و سلم در یعنی متاسفانه کسایی که در مکتب رفتیم و حوز علمی نرفتیم اینجا که هیچ جاهای دیگه هم هست بینمی و علیه رو اجیاد نگیرفتن. صلی اللہ و و سلام آره درست یعنی اگر آلهی نگیم ما شما افتادیم از خط خدای نخواستم درست تنها خط و نشانه ما و آلهی دیگه خلاص درست, درست؟ چون اگر آل نباشه دیگه قرآن کریم معنی پیدا نمیکنه کنه ها؟ شده؟ قرآن کریم با آل هر دوش یک جای بدرد مخربه تنهای یک کدامش که بده چی کفایت کننده نیست کفایت کننده نیست متوجه شده؟ باید قرآن با آل یک جای باشه و لا کفایت کننده نیست فهمیدیم؟ شما برحمت روز شد؟ خب پس حالا در خور فهمیده شد که پیامبر و پیامبری میرسه برای این که افناق رو با ما برست؟ اونه کده مطلب زیبایی های اخلاق رچه؟ آره خوبی ها را ما یاد بیدن این هدف از خیانبریش قرار میده جعل رسول الله خد خد یعنی به تحتیل جعله قرار داد خیانبره چه؟ الهدف من بعثته المبارکه هدف از بیستش را چی؟ آه. هدف از بحیثت پر برکتش را چی؟ زیبایه های اخلاق زیبایه های اخلاق درست؟ دوستاندان اخلاق در جامعه خب ببین اخلاق خودش اگر کسی بلده بگین اخلاق از نظر کلمه اخلاق بگی خود جامعه مادی بگی خودش بگن خیر شما خود تخوش بگن ما سالید میاد اخلاق را بگیم که که معنیش هست. نه خود کلمه را تعریف اخلاق جمع خود می که از گرفته شده به معنای زیبایی آره زیبایی ها باشه. <سؤال> اخلاق جمع خلق. خلق به معنی حالت یا رفتار آدم نیست. خلق به معنی ایجاد. اقت می خلق به معنی است. اما خلق معنی هستی نیست. خلق رفتار هست. اخلاق جمع خلق به معنی رفتارها. آدم هر نوع رفتار را که داشته باشه میگه فلانی اینطوری اخلاق داره. شد؟ اگر در یاد ما شما مانده باشد در قسمت همه درس چه معارف الالهیه گفته بودیم اخلاق و دین الفبائل و, و رضائل داره شد؟ هم خوبی ها بود و هم بدی ها پس اخلاق به معنی رفتار هست حالا پیامبر آمده به ما مکارم اخلاق رو یاد میده یعنی فضائل اخلاق را بیابید. یاد میده و رضایلش را خوشدار میده که باید به با انجام دادن نشه از توسط ما. کامیدیم؟ در آره. این نکتر را در ذهب بیست بار وقتی هدف بیست پیانبر مسئله اخلاق. اخلاقی سازی جامعه است خیلی حرف دیگه. دقیق کردیم چه میدیم؟ یعنی نتیجه نماز اخلاق میشه دیگه. آره؟ و نتیجه خیلی کارای دیگه اخلاق میشه. یعنی وقتی اخلاق بود معنیش اینه که دیگه ای کارها خوب انجام شده اگر اخلاق نبود معنیش اینه که آدم هنوز به جایی نرسیده اون جایی که باید میرسید فهمیدیم چی میگهیم؟ جای رسیدن که معمولا در شما گفتن معمولا مگهید یا درس بخوان یا مثلا این کار نه جای رسیدن از نظر هدف خلقت اینه که آدم به علمو سجایه و خوبه رفتاری انسانی خودش بیرسه وقتی اونو تا آدم شد باز اگه مرد مردنش را حد جایش در بههیش ده ویلا جای هرکس کس و ناکس در بهشت نیست متوجه شدیم و قرآن حالا ترجمه کنه همونی که ایکی میگن آشه ای آشه لغو چه نه یا بایی دیگه لغوا ولا کدابا چه قسمیست لاغو ولا نه نه خودم آیا آیه رو مو یادم. خب حالا خودی این آیا یادم رفت. دقت میکنید چه میگه؟ او آیا صریح میگه میگه کسایی که در بهشت هست سخن بیهوده نمیشنوه. متوجه شده سخن بیهوده نمیشنوه. ولا کذوبه، سخنای دروغ نمیمونت. اینال دینامش ما شما بفهمیم که های بهشتی هستیم یا نیستیم اگر سخنهای بهوده میشه میدیم معنی که بهشتی نیستیم و نه نه لا ولی ها احسن، لا از ها کذاب چی؟ در بهشت کسی سخن لغو و کذ را نمیشینه لغو یعنی بهوده نه حرف ناباب درست حرفای نباب. اگر ما اینجا داریم خود ما حرف نواب میزنیم و حرفای نواب رام دارم میشنویم خب یکی از حرفای نواب هم است. دیگه مثلا سعی شد؟ معنی شده که به این اشتفاته شرخان دیم خب همین دیگه ببین خب همین دیگه ببین لا يسمعو. کسی که احتیاط میکنه به طب شما نمیشنود معنیش اینه که خود را لیاقت, ب... لیاقت به را به خودش ایجاد کرده. ما و شما که اینجا هست شدیم برای اینه که به انسانیت خویش برسیم. ابتدایی نمیرسه آدم در ابتدا خب آدم نمیتونه مثلا در دیگرها یعنی روحیه بخششگری مثلا یا روحیه گذشت یا روحیه تحمل مشکلات خود آدم خود را به زحمت بیندازه تا دیگر راحت زندگی کنه. این روحیه ها در اوایل نیست. نه تنها اینا نیست که بلکه بعضی شاید دروغ هم بگرد. بعضی بازی هم بیده آدم. در معاملات هم غشکری کنن و تابعه بگرد. شد؟ اینو هیچ کدامش در دین نیست. در اسلام نیست. وقتی اینم مجموع نبود از یه آدم یک آدم به هیچ دی آره اخلاق اینطوریس پیامبر هدف بیستش را آمده مکار مکارم اخلاق و تعمیمش قرار داده تا آدم را به سجایه اخلاقی برسنه به زیبایه ها و عرضش ها درسنه. هر هرکی خود را به اونجاها رساند به جای رسیده آف و به هیچنگوارایش با. شما خب نعم لقد جعل الاسلام ديننا والتقوى محور الاخلاق والآداب و الادب وعرف للاخلاق اركانا اربعه و ندب المسلمين اليها و امرهم بالتحليه بها به بها. نعم. نعم بل. لقد جعل الاسلام قطعاً اسلام قرار داده. چی قرار داده؟ دین و تقوی. دین و تقوی. یعنی تدایون، دین مداری و تقوی و فرهنزگاری. چی قرار داده؟ محور الاخلاق. اساس اخلاق. محور اخلاق. به تحقیق اسلام قرار داده تدعیون و پرهزگاری رو محور و اساس اخلاق و آداب, آداب, آداب. آداب. اساس و آداب ببین اساس اینجا گرچه به معنی اصول هست اساس. ولی اینجا محور محور, تق... محور تقریبا فارسی است خواه؟ محور تقریباً فارس است. یعنی ما و شما داریم استفاده میکنیم. ببینید ببینین محور چیست. مسجد که هست در بین این, این, این صاحه محور محوره. چرا؟ چون محور ما و شما او طرف مسجد باشیم. من مسجد همه یه طرف باشیم. یه طرف باشیم. او طرف باشیم. ها. یعنی گرد مسجد. گیردار گیردش که باشیم. یک جای وصل شدم. جانب. با مرکزی داریم که اون مسجد سعید شد پس مسجد. پس مسجد در این ساحه محور است. فهمیدیم؟ اینطوری فهمیدیم یا نه یعنی اگر مسجد نباشه این ساحه از هم پاشیده اینوی تره دیگه فهمیدیم؟ دیگه تا خانه مرکزی داریم؟ نداریم بند مسجد سعید شد پس مسجد محور است. محور اخلاق تدین و تقوا است محور اخلاق و ادب ادب جمع ادب است فهمیدید و عرف الاخلاق ارکان و هم اسلام برای اخلاق شناسانده. عرفه تعریف کردن شناسانده. و عرفه یعنی و شناسانده از اسلام برای اخلاق چی را شناسانده؟ ارکانند. فرق بین رکن و غیر در نماز چی بود؟ اگر رو کن اگر رُکن ولو عمدی یا سهوی خراب شود در نماز نماز باطل است. اینجا وقتی میگه که اسلام ارکان چهارگانه را برای اخلاق ذکر کرده یعنی اینمی چاردانه اگر نبود از اخلاق به اخلاق اون متوجه شد؟ چه شنو تي نديرو باش نمشيو شكون كي قالوا بالاخلاق و خوب و ندیب المسلمین إلها و مسلمانان را به همه اخلاق چارگانه تشویق کرده ندیبه تشویخ. ندیبه یعنی متحق شما تشویق کرده protein تشویق کرده و مسلمان همه به همه ارکان چارگانه إلها به همه ارکان, ارکان چارگانه به <تصفح> part ها مسلمین او جهست دیدیم به همه ارکان چارگانه یا ارکان اربعه تمام شد؟ آه و امرهم به تحلی بها و امر کرد است اسلام همون مسلمانان را به تحلی خلول معنیش چیست؟ داخل شدن. یعنی مسلمان ها چاردانه را در وجود خودشان داخل کنه و داشته باشه. اعمر کرده از اسلام مسلمانان را. به بتح... تحلی بها. آره داخل شدن هم ترخیم خوب کرده. یک ترخیم قشمتر را کنه. با نه؟ ی ترجمه خشمتره اگر بیتونی فایده بدن. آنجا هم می تونی رسید رسانی کنی. و آما که برایشون این کار میکنی. نویستیم. و آمر کرده از اسلام همه مسلمانان را بین ویستن هم داخل شدن بعد نیست. بعد داخل شدنی به همه ارکان چهار چند تا, تا رکن گفت 4 رکن اول اسلام اه طهارت القلب و صدق النیه یا مسلمان رکن اول اخلاقش این است که باید قلبش پاک باشه طهارت القلب طهارت پاکی قلب قلب مصادف روخلی روکن... اه یا مسلمان خب بالا گفتیم نه؟ بالا گفتیم که اسلام همین چهار تا رکن رو معرفی کرده و مسلمان عمر کرده که به اینها تخلیه کنه پس یک مسلمان، درست شد؟ رکن اول اخلاقیش این است که باید قلبش چی باشند؟ و صدقش و صدق نیه، نیتش هم راست باشه. ببین، نیت راستی معنیش چیست؟ کسی می تواند توضیح می دن نیتی راستی موند؟ هر ما حقا را می کنید تاقت در قصال خدا باشد نقدر دید آه این هم خوبه این یک تاریخ دیگه راستی می مثبت فکر کردن بر هر چیز آه این هم دو دیگه. بر هر کسی مثلا قصد یک تاری اوانیت شد می کنید وقتی نمی کنید کار داری اوانیت شد باشه کنید باید خوب باشد راست موند؟ razi karaj aga اگر خوب، chabukniator dor anjom nati aga khub bashad jazaa pahash khub midid razi karaj aga niyyat کسی <سو> تواجه ندارد؟ نیت راستی نیت راستی، درسته دیگه تواجه میده چیزی؟ بگو مثلا یک کسی میرهد به خاطری که هم که نیتش درست نیست و که مثلا بین مردم چی درست خیلی عالی احسن اینم یک نوع از تعریف ستنیات میتونه باشه ببینین ستنیات رو خوب دقت کنید دو نفر با هم کار می دو نفر با هم کار می یکیش دونبال اینه که این نفر که امروزه کار می همون چیزی که برای خود میخواییم برای هم باید بخوایم یعنی اگر یک مقدار پول دز ما آیدیم از این راه میرسه به این دیگریش هم برسه سعی شد؟ یک دیگه چی کار یک چیز رو که یاد گرفت که یک خوب شیر ما یاد به نفودانی یاد که ما از این که بالاتر داریم سعی شد؟ مثلا برای نمونه میگه یک از راه‌های پول درآوردن این من این در دفش خود نگم می‌داریم و این یاد نم. چرا چون ما در دوکان از ما بیشتر از اینکه ببیچیم. اون نیت چیز صدق نیت آن است که آدمی و دیگری جز نیت خیر و خوبی نداشته باشه ما فقط نمی‌گیم نیت خیر و خوبی نداشته باشه. شمیدون. هر کسی نسبت و دیگری نیت غیر خیر داشته باشه اون صادق در نیت نیست. <تصفح> امروز هم مثال زدیم، دیگه گفتیم کل با هم اینجا درس میکنیم، نکنیم، نه؟ کل این اگه اینجا درس میخوانیم خب یک نفر مثلا خوب یاد میگیره باز میگه دیگه یاد ندیم که ما نمره اول چهیم. خب یک ما در را باز می‌گذارم. دیگه نمی‌هم، منم سیمضیو تو بحث نمی‌کنم. درس می‌تونم. شاورده وقتی که درس مرا با درس سوال مقایسه و اعلامیته پیش من. من به اون نیت نمیرم که بگم دیگه سوال پیش من بیاره. یعنی اون اعلامیته اصلا میگه تو خودت درس نیت اصلا ندارم که ما به شرط از اینکه آره. اینجا هم یکی از مستاخهای سیفت نیت هست. راست نمید. نفر نرفته که دیگری را از جای دیگر بکش بلکه رفته تا او صاحبش رو کمک کنه اه؟ کمک کردن صدق دیگر نیست؟ دست. آره اما اگر یک نفر بوره که خود را گفته مردم اونجا تیم بده و امه. که دیگر را را بکشن، این صدقنیت نیست واضح هنه؟ صدقنیت یعنی این خب پس ببینید وقت اسلام میگه که طهارت القلب قلبیت پاک باشه یعنی ما جز نیت خیر نسبت به دیگران نیت شر خدایی نداشته باشیم مثلا شما چرا وقتی کسی ما نیت بد باعث شر منزله احساس سجانه اثر بره اگه قرار نیت بد نکنه نیت بدی ما نکنه بلکه نیت صلح داشته باشه واضح شد بر. دو مثلا طلاقه الوجه و بشاشته طلاقه الوجه یعنی باز بودن رها بودن صورت باز بودن رها بودن صورت وجه صورت وجه صورت رها بودن باز بودن آه. و بشاشته متبسم بودن مبتسم، تبسم. با خوشحال و و با شاشت متبسم بودن. بودن. دقت کنید چه بگیم. اسلام خنده را خوش نداره، خب؟ دقت میکنید؟ کدام خنده و خنده ای که با قهره ها و سبه بلنده از اون طرف چهره عبوس و خشین را هم دوست نداره سعی شد؟ بلکه بین این دوتا که همو متبسم هست اسلام به آن توصیه و تأکیب میکنه. ببین؟ خنده کردن با صدا نماز را درست اخلاق هم خنده چهره باید باز باشه دقت کنه چه میگن چهره برای مردم گوشوده نمیشه مگر این که ما خود را بی سازیم یعنی دارای اخلاق بشیم و ای دارای اخلاق شده نمیتونه مگر این که قلب خود را خواب کنیم خامیدان چه میگید؟ هر اون که ما شما در طباله و طباله چه خواندیم دوستان خدا را و دشمنانش را حالا یک نفر باید صرف و فشار بیاره که هر که دوست خداست ولو ای نه، نه ولی این دوستش نداره ولی حداقلی دقیقه روی چهره ابوس نداره اتقدر نکنی؟ اتقدر نباشه اتقدر نباشه خب اینا دیم اتقدر نباشه وقت قلب پاک شد این خود به خود پاک نمیشه باید سر خود فشار بیاریم که پاک شد چرا را فشار بیاریم؟ ببین؟ نمونه شن چه مثال پیشتر دادیم کلگی کل ما شما دوست داریم اون در اول باشیم درست شد؟ سادت آه اگر یک نفر در ذهن می که ما فلان یاد که را اول نشه یعنی میجو فشار وارد میشه میگه یاد بیار باید سرک فشار بیار بگه نه اورم یاد بیار او یاد بیار ولی اون را اول شد شد واقعا فشار کار دارم ندارم؟ یعنی یعنی فشارهای روحی باید روی یک نفر بیاید تا این نفر زو شود در اسلام یعنی شو. چه شود؟ مجذوب شود و هم روحیه های انسانیشون بالا, بالا بیا و رست کنه و گول کنه بتاره صحیح آره خب وقت چونین شد به خط میکنین وقت چونین شد باز چهرهشان بروی همگان باز میشه متوجه شدید و ایلا چهره ها عبو سرین دین اسلام خوبیان نه قدران خودخشم دین میزنن نه با خنده دین اسلام میانست بعد از هر بار خوب دنیا بعد از میانه کار هم بارشد بله همون تواصل هم زندان آه خبسوم، مؤمنین اگر فکر نکنید و فکر کنید همه که هم دیگر را میبیند، متبسیم میشوند. خبسوم؟ نمیشون؟ میشوند. یک سوال هم میدونم، جوابشم خودتان بازیتر میدونم. مثلا شما کارخانگی میدوند؟ میگوند در باره این مساله کارخانگی بیرین. ما کنی ما معلومات پیدا نکنیم مثلا کسی کنه آورده، از ما پرسان می‌کنه کارخانه‌گی چیست؟ ما اگر بگویم مثلا اینی کارخانه‌گی است یادت می‌کنه با مستقبولی از ما کارخانه‌گی بگیرم اگر ندهیم میگه که این اینیت برداش با من در که خوبشون رو بگیرم این چیز قشنگیست داره خوب شده کنم ببینیم یک دفت سب کنم چی می‌گیم؟ یک کمک هست خب؟ یک کمک هست و یکی هم کمک در عالم واقع خیانت و ظلم اگر کسی به آدم تنبل نان را خیده در دا دانش بیده این به او خیانت کرده و ظلم کرده این قد میکنین کمک نکرده بلکه ظلم کرده چرا؟ چون همو با او همونطور عادت پیدا میکنه دیگه دایم هم رقم میشه این کمک میشه؟ یک لحظه اما یک تعداد هست که دنبال این است که بفهمد چگونه انجام دهد یعنی اینجا اگر کسی کمک نکنه این باز هم ظلم کرده چرا اینجا جایش است که کمک شود او تلاشو خودم میکنم. آره. آره، درست شد؟ بس. اون جایی که ما و شما داشتیم مثال میزدیم که یک نفر یاد گرفته دیگار نمیخواه یاد بده، دقیقاً اینی قسمته دیگاه دنبال یاد گرفتن هست ولی او یاد نده، آره. اینی کار داره ولی اگه دو وقت امتحان آمد گفت که پارچه هماره حل کن؟ حرام شد؟ <بلحق. آه. تصفح> <تصفح> <تصفح> <تصفح> <تصفح> <تصفح> <تص تمام شماره سوم خی کلامی و حسن القوم از اخلاق یک مسلمان این است که کلامش پاک باشه و حسن زیبا باشه پاک خب تا یه کلام کلامی هست رو حالا قرب زدن تو که بی خش می این کی و چه ونده تو یه بی خش و می گنی اوخه اینجا یه تایب من اینه که حقیقتا کلامی که روحیه ایمانی آدم رو خراب کنه نگا این طوری. هم ظاهر کلام هم باطیلیشه. ببین او هم تقریبا نمی رنگ و معنی خوب خیلی خوب. خب صورت گفتن تمام شد؟ شماره چارم حسن التعامل و تیب المعاشره تعاملش یعنی چی میگم زیبایی در رفتار رفتار نفر خیلی زیبا باشه و معاشرتش با مردم بسیار پاکیزه باشه برای شد پاکیزه باشد معناس با مردم بل کل موجودات، مردم کشی بلکه قد کل موجودات رفتایی با زر را شد معاشرت چیه؟ رفت و برد چی میگه؟ آمد و برد چی؟ رفت باشه. سعی کنین چی میگین خواه؟ دکت میکنین چی میگین؟ یا نه؟ خواه، پس بشنویش آدم باید کل حیوانات غیر از انسان بکوشه؟ نه، چرا؟ کل حیوانات رو باید نکشت؟ نمی‌شن که چرا؟ آخه یکی کسی که شما اونم نکرد. فقط کلی ما مرغی رو نه باید بکشیم. چرا؟ چون مرغ ما را اذیت نمی‌کند. ولی اگر اذیت کرد بیرون نشوندت مشکلی نیست. لقد میکنه چیه یک دفعه سخت دیگه بچم مر رو باید کشت درست حیوانات دیگه هم همتره. اینجا معاشرت پاک و طیب نسبت به انسان ها و حیوانات چیست اینکه حیوان را بد دلیل آزار نده حتی حیواناتی که به دلیل کوشته میشن فردای قیامت میه شکایت این ما در یک روایت دیدیم تا هنوز تا زمان که این روایت را ندیده بودیم در ذهن ایک سؤال بود که های حیوانات هم روز پیانه میشه یا نمیشه بر اساس این روایت حیوانات هم زنده میشن و کسایی که به دلیل اونها را کشتن از اونها شکایت میدون همین همین در باید احرام و حلال را باید ترک بکنه برمون را خمیصر حیوان در حیوانه چی تاید باید نمون مقدار گوشت که باید در آنچی شده برمون را استفاده نمیتونه هم هم. که مثلا یک قدرخونی از یک غمیوان تو شکار بله درستا؟, درستا پس معاشرت طیب اینه که آدم رفتار خود را سنجیده با مکش انجام بده. جایی که کشتن این کشتنی بود، انسان بود باید بیکشیم. دیگه نه؟ آه. باید کشیم. و الله على سيدنا محمد و آلها اخيرين